ورود بر همه شما شنوندگان وفادار رادیو البورس. خبرهای دانمارک در هفته‌ای که گذشت رو به سهم شما عزیزان میرسونم با ما همراه بشید نخست وزیر دانمارک با دیگر رهبران اروپایی قوانین تازی آمریکا را بررسی کردند و دولت دانمارک رسما اعلام کرد که با سیاست های ضد مهاجرت ترامپ مخالف است. خبر بعدی در مورد شرکت اینترنتی دولت دانمارک برای اپل، گوگل و فیسبوک سفیر تعیین می کند. آنها وزنهایی در کشورهایی هستند اگر کمپانی هایی مانند گوگل، فیسبوک و اپل کشور بودند، نه تنها قدرت اقتصادیشان از بسیاری از کشورهای فعلی جهان پرزورتر بود بلکه حتی شرایط و عضویت در باشگاه جی بیست به عنوان 20 اقتصاد قدرتمند جهان را داشتند دولت دانمایک با چنین توجیهی تبدیل به این به اولین دولت جهان شده که برای کمپانی های سنگین و از در هیته تکنولوژی ارتباطی سفیر دیجیتال معرفی کند. فرش های ایرانی ایکیا دست دوم هستند. مدتی است که در میان فرش های فروشگاه ایکیا فرش‌های ایرانی هم دیده میشه که به صورت دست دوم فروخته میشه روی برچسب خرید این فرش‌ها نوشته شده آنها دست دوم میباشند ولی آیا این فرش‌های ایرانی از خانه‌های بافندگان و در شرق ایران آورده میشوند یا اینکه این, این فرشها مدت زیادی روی زمین بوده و از آنها استفاده شده است روی برچسب آیکیا به طور دقیق نوشته شده فرش بلوچ ایرانی از استان خراسان در شرق ایران این فرش این فرشات توسط قبایل بلوچ که به عنوان اشایر و نیمه اشایر با بافندگانی در روستاها زندگی می بافتر بافدر می شود این بافندگان را به دلیل نیاز مالی می فروشن. پس از شسشوه کامل و انجام تعمیر و رووگری این در فروشگاه های آیکیا در اروپا جمله دانمارک فروخته می شود شبکه خبری دیارید دانمارک با این تیتر منتشر کرد بازیگر زن ایرانی اسکار را در اعتراض به ترامپ تحریم کرد. طلانه علی دوستی بازیگر فیلم فروشنده که نامزده اسکار شده در توییتش اعلام کرده که تر ممنوعیت سفر ایرانیان با آمریکا نجات پرستانه است و برای همین او برای شرکت در مراسم اسکار به آمریکا نمی رفت کنترل مرزی موقت در طول دوازده ماه گذشته باعث شد تا تعداد پناهجویان ورودی به دانمارک از رقم تخمینی بیست هزار نفر به هفت هزار نفر کاهش یابد قویترین توربین بادی جهان شرکت توربین بادی وستاس از قویترین توربین بادی خود پرد برداری نمود این شرکت در یک جوینت ونچر با شرکت ژاپنی میتسو بیشی یک توربین نه مگاواتی ساخته و آن را وارد چرخه تولید نموده قوی ترین توربین قبلا 8 مگاوات بوده محکومیت یک صراف به زندان یک صرافی در منطقه نوربرو به نام یونی تراوال که توسط یک پدر و پسر اداره می شد پول نقد حاصل از فروش مواد مخدر در منطقه کریستینرا را با اسکناس های پانسد یورونی عوض می کرد این دو به اتهام پولشویی به 111 میلیون کورون معادل 15 میلیون یورو جریمه و 6 سال زندان محکوم شدن دادستان اعلام کرد تخمین زده می شود که میزان پولشویی توسط این صرافی در حدود 223 میلیون کورون بوده است پیش بینی می شود در سال 2018 تعداد 93 هزار غیر دانمارکی در لیست بیکاری قرار گیرند و مزایای اجتماعی دریافت خواهند کرد که فقط که فشار مضاعفی بر اقتصاد به دانمارک به حساب می آید بر اساس براورد محسس تحقیقاتی یک پناهجو بین 20 تا 30 ساله باید 65 درصد مشارکت نیروی کاری داشته باشد تا باری بر دوش جامعه به حساب نیاد ولی در حالی که این رقم 50 درصد می باشد در یک نظرسنجی جدید آمده که حزب سوشال دموکرات دانمارک از حمایت نزدیک به سی درصد رای دهندگان برخوردار می باشد. در این نظرسنجی احزاب مخالف با پنجا و یک و چهار درصد در مقابل 48.6 درصد برنده انتخابات خواهند بود به دنبال اظهارات منفی ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره انرژی های تجدیدپذیر وزیر انرژی دانمارک برای سفر به آمریکا برنامه‌ریزی می‌کند تا برای فناوری انرژی تجدیدپذیر لابی کند. دانمارک در حدود 40 درصد برق تولیدی خود را از طریق توربینهای بادی تأمین می‌کند و شرکت وستاس، بزرگترین تولیدکننده توربین‌های بادی و دونگ انرژی، بزرگترین اداره کننده توربین‌های بادی فلات قاره‌ای در جهان به دانمارک تعلق دارد. راسبوسه نخست وزیر دانمارک از کشتی جنگی پیتر رویلموس باز به عمل آباد. این کشتی روز پنجشنبه شنبه عظیم دریای مدیترانه شد و به عنوان محافظ ناف های هواپیما در جنگ علیه داعش در عراق و سوریه به کار گرفته می شود سرپرست شورای اروپا، سیاست های در کنار سیاست خارجی روسیه روسیه سلطجو، چین مصمم و حملات تروریستی اسلامگرایان را بخشی از تهدید خارجی علیه اروپا برشمرد. به دنبال اعتراض شدید دولت سوئد در کنار دیگر دولت های اروپا به آمریکا در رابطه با جلوگیری از سفر شهروندان اروپایی به این کشور دولت آمریکا در این رابطه دست به عقب نشینی زد و جان کلینی وزیر امنیت ملی آمریکا در یک مصاحبه مطبوعاتی رسما اعلام کرد که بر اساس تصمیمی که از سوی دولت آمریکا اتخاذ شده، ممنوع بر اجرای مقررات ممنوعیت ورود به آمریکا گذرنامه سفر است و به این ترتیب افراد دارای تابعیت دوگانه برای مثال ایرانیان دارای تابیت و گذرنامه سوئدی در صورت استفاده از گذرنامه دیگری که مشمول محدودیت نیست، اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت با این حال سفارت آمریکا در کپنهاگ پایتخت دانمارک ممنوعیت ورود ایرانیان دارای تابیت دوگانه با آمریکا را تایید کرد. احتمال حضور پسر نخص وزیر سابق دانمارک در دولت ترامپ هنریک قاسموسن پسر نخست وزیر سابق دانمارک پیشنهاد یک منصب عالی رتبه را در راه از دولت ترامپ دریافت کرده و به گزارش پولتکن ویگ در شروف پذیرفتن این پیشنهاد است هنریک خاسمسین که در سال 2010 و در زمانی که پدرش دبیر کل ناتو بود به شهروندی آمریکا درآمد و دولت جدید آمریکا مشغول،, مشغول خواهد شد قبل از فوق جوان به عنوان سفیر جدید آمریکا در دانماک دان برده می شد اما به نوشته روزنامه پیشنهاد یک پست دیگر به ارائه شده است در حالی که انتظار میرود شهرداری آووس هفته آینده جداسازی سخرای عمومی جد جنسیتی را ممنوع اعلام دارد، یک استخر کوپناک منابع مالی لازم را تخصیص داد تا بتواند در آن به دختران مسلمان در پشت درهای بسته و پنجرهای مات آموزش شنا داده شود. اما علی رغم تفاوت در دیدگاه دو شهرداری، خانم اسوربگ وزیر مهاجرت از دخالت در بحث سخر شنا برای مسلمانان خودداری ورزید و گفت نیازی به قانون جدید در این را زمینه وجود ندارد و ما فقط باید شجاعت آن را داشته باشیم که به مسلمانان این کشور بگوییم اینجا دانمارک است و لازم است که شما به روش زندگی ما احترام بگذارید خانم استورب افزود ما در کشوری زندگی میکنیم که آزادی و برابری از اصول اولیه آن میباشد و ما باید آن از آنها دفاع کنیم. تنها روش تغییر در دیدگاه مسلمانان باید محافظ کار در این کشور از طریق بحث عمومی است، نه اعطای امتیازات خاص از طریق قانون. دانمارک گنرترین در مواد قضایی در اتحادیه اروپا. دانمارک همچنان به عنوان گرانترین کشور در تهیه مواد قضایی در اتحادیه اروپا شناخته شده است. مصرف کنندگان در دانمارک 45 درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا. برای مواد غذایی پرداخت میکنند در حالی که در لهستان این رقم سی وهفت درصد تر از میانگین اتحادیه اروپاست کارشناسان دلیل این امر را تنها مالیات و عوارض گمرکی نمیدانند به گفته آنها فروشان گرانترین قیمتها را طلب میکنند چون میدانند که درآمد در این کشور بالاست و مردم حاضرند برای مواد غذایی پول پرداخت کنند همچنین عدم وجود رقامت نیز نقش مهمی در این امر ایفا میکند و کنترل مرزی بین دانمارک و سوئد برای سه ماه دیگر تمدید شد پس از تایید اتحادیه اروپا دولت سوئد اعلام کرد برای یک دوره سه ماه دیگر کنترل مرزهای داخلی را تمدید می کند پایدار عزین